داستان پنجم یاره از پشت در فلزی چراغسازی صدای قدم های پاسبانی که به قفل‌ها دست می‌زد به گوش می رسید ناله بوغ چند اتومبیل از دور آواز مستی که از بیوفایی روزگار و یار می‌نالید، و سکوت نازک و شکننده فضا بذر درد غربت در دل یاره می کاشت. شانزده سال داشت هفت کلاس درس خوانده بود و تا آن زمان بیرون از خانه و دور از پدر و مادرش زندگی نکرده بود یک ماه بود که از شهرش فرار کرده بود به تهران آمده بود و شاگرد یک چراغساز شده بود و چون جایی نداشت شبها توی دکان میخوابید. وقتی تنها شد و نانش را با یک کاسه کوچک ماست خورد وقتی جلو جایش را که شپش زده بود انداخت و دراز کشید، وقتی چشمش به که نوری افتاد که از زیر در فنری به میان دکان سریده بود، بغزش ترکید و اشکی گرم به صورتش دوید. بلند شد و از ترسان که نبادا پاسبان متوجه بیداری او شود، آهسته چراغ بادی کوچکی را که تازه تعمیر کرده بودند آورد و روشن کرد. کاغذ و پاکتی را که از چند روز پیش تهیه کرده بود برداشت و توی جایش نشست و به گوشه دکان زد. موشها بدون ترس در گوش و کنار میدویدند. دویدند نانهای خشک را می جویدند. صدای پا در بیرون دکان توی پیاده رو کمتر و سکوت سنگینتر و زخیمتر می شد. نه صدای پرندهی نه صدای بچهی و نه خرخوره مونسی یاره را با پشت دست پاک کرد و آب دهان را گورد داد و شوری اشک و مفر را در ته گلو حس کرد به در و دیوار نگاه کرد چراخهای غرازه بخاریهای جور و جور با سایهاشان روی سقف جمع شده بودند گویی او مرده بود و گروهی عزادار دورش حلقه زده بودند روی دیوار وسایل کار بود روی میز چرب و سنگین پریموس که همیشه داغ و پرحیاهو بود رو به دیوار خاموش و سرد نشسته بود و گویی از او غرق کرده بود یاره باز مثل هر شب خود را در چاه بی انتهای خیال رها کرد و گذشته را به یاد آورد هرچه مویز سیاه میخورد، هرچه صبح زود سر خود را توی حوز میکرد، نمیتوانست درسهایش را خوب یاد بگیرد یک بار هم از کنار معرکه یک مارگیر دعایی خرید و موقع امتحان توی جیب گذاشت اما آن هم بیفایده بود به دوچرخ سواری علاقه داشت، شکمو بود و پول نداشت، جانش به سینما بند بود حاضر بود هیچ نخورد، هیچ ننوشد و فقط هفته ای دو بار سینمایش را برود یک دفتر بزرگ درست کرده بود که عکس ها را از توی روزنامه ها و مجله های کهنه میبرید و در میان آن دفتر میچسباند یک دفتر فیلم هم داشت که از یکی از همکلاسیهای پولدارش دزدیده بود در گوشهای مینشست و اکس ها را تماشا می کرد. فیلم ها را رو به آسمان می گرفت و نگاه میکرد و یاد صحنه ها میافتاد. به یاد هنرپیش های محبوبش اشک میریخت. سینما تنها جایی بود که او توانست از دست بدبختیهایش فرار کند و خوش باشد. دیوانه میشد برمیخواست و آنچه دم دستش بود میبرد و میفروخت. حتی یک روز یک دستمال پر شکر از خانه دزدید و به یک غنادی برد و فروخت پول سینما از این طرف و آن طرف در می‌آمد این اواخر موتورسواری هم یاد گرفته بود نتوانست مدرسه را ادامه بدهد رفت و شاگرد یک دکان در و پنجره سازی شد صاحب دکان بیشتر اوقات کارها را میگذاشت و دنبال قاچاق میرفت. یارو دو سه تا شاگرد کوچک و بزرگ کار می‌کردند. یاره با همدستی آنها آچار و وسایل دکان را میفروخت. یک روز دو تا مرغ چاغ و چله تو دکان پریدند. مرغها را گرفتند و فروختند و پولش را تقسیم کردند. زود پشیمانی به سراغش آمد. نمی‌دانست چه بکند. شاگردها گذاشتند و رفتند و او تنها ماند. می ترسید که یک مرتبه صاحب دکان به کارهایش برسد و چیزهای گم شده را از او بخواهد. شروع کرد به نماز خواندن و مسجد رفتن. از را تسبیحی به دست میگرفت و در مقابل چشم امسایی روانه مسجد می شود. اما وقتی صاحب دکان به وضع کاروبارش رسید و متوجه کارهای یاره شد به پدر او و بعد هم به دادگاه شکایت کرد یار ترسید خیلی هم ترسید شب به خانه برنگشت بلیتی تهیه کرد توی مسجد خابید و صبح زود روانه تهران شد وقتی اتوبوس از خیابان‌های ساکت شهر میگذشت گلویش فشرده می‌شد کوچه ها و دکان ها و سینماهای بسته را که از جلوی دیدش فرار می‌کردند با هرس و ولع نگاه می‌کرد رفتگر تنهایی که با بیحالی جارو می کشید، مغازه هایی که چراغهای قرمز و سبز از پشت نرده روشن بود، خیابان آرام و پر از خاطره، میوه های گندیده توی جویها و میوه که در هوای اواخر بهار پشت دکانها ها بودند. میدان را که دور زدند، هوای خنک به درون آمد. شیشه را بیشتر باز کرد و بوی گل و درخت و بوی نان داغ نانبایی دور میدان اتوبوس را پر کرد آدم سی به دهان انداخت و به غیافه های ناشناس و خوابالود اطرافش نگاه کرد یک نفر قرغر کرد که پنجره را ببندد بست و تنها مونسش صدای وزش باد از زمزمه خاموش شد آهنگ یک نواخت موتور و فرار ساختمان ها, کوچه ها و درختها او را از خود بیخود کرده بود در قاب بزرگ شیشه روبروی راننده از پشت کوه بیستون نور سرخ رنگی به زیر پوست تیره یا آسمان میدوید شب از کوه سقوط می کرد و زخمی میشد و خون به آسمان پشت کوه شتک می میزد یاره سرش را روی لبه سندلی جلویش گذاشت و گریه کرد آه کشید و موجی سرکش و آسی تمام وجودش را دربر گرفت چرا کسی نبود که حرفایش را بشنود؟ چرا کسی نبود به درد دلش برسد؟ نه یک معلم خوب و نه کسی که بتواند راهنماییش کند و چقدر به سینما علاقه داشت؟ در سینما زندگی می کرد وقتی به سینما میرفت گویی از قید و بندها آزاد می شد فیلم مجزوبش می کرد چه میشد اگر او هم هنرپیشه می شد یک بار به یکی از هنرپیشه نوشت و هنرپیشه در نامهای ماشین شده در دو خط به او جواب داد آقای عزیز اجالتا درستان را بخوانید شما هنوز خیلی جوان هستید، هنرپیشگی هم شغل زیاد خوبی نیست. از آن به بعد کینه ای از هنرپیشه به دل گرفت. پس آن همه بچه و جوان و کوچک و بزرگ که در فیلم ها هستند از کجا آمدند. مگر نمی شود هم درس خواند و هم توی فیلم بازی کرد. چطور شغل خوبی نیست؟ پس آن همه لباس قشنگ را از کجا می آورند؟ آن همه بود، آن همه موتورها و اتومبیل‌های قشنگ و غذاهای خوب از کجا آمده است؟ ای دروغگوها یک روز مادرش از دست او زلده شد رفت و به نابرادری یاری که معلم بود شکایت کرد نابرادری مثل جلاد آمد به جایان که با او حرفی بزند و راهی پیش پایش بگذارد نکشیده و هفتادمند یک سیلی خوابان بیخ گوشش و با مش دهانه او را خونیم کرد. دفتر عکسهایش را پاره کرد و رفت. یاره دو روز تمام گریه کرد. اکسهای اونر را با هزار خونه دل به هم چسبانید. دفتر را دوباره مرتب کرد و دلش مالامال از درد و خشم شد. یک پلوت خرید و یکی دو آهنگ از فیلم محبوبش را یاد گرفت که بنوازد. داییش که با موسیقی مخالف بود فلوت را گرفت و شکست و به او گفت که غرتیبازی را کنار بگذارد عکس یک هنرپیشه را بزرگ و رنگامیزی کرد آن را هم دبیر فیزیک از دستش گرفت و توی بخاری انداخت دبیر ادبیات اسم او را آقای هنرپیشه گذاشته بود تا چیزی میشد می گفت آقای هنرپیشه بیا انشا بخوان؟ آقای هنرپیشه چرا شعرها را از بر نکرده آقای هنرپیشه چرا لغت بلد نیستی آقای هنریشه وصله سر زانویت دارد میافتد. چند بار هم بهانه گرفت و او را زد آقای دبیر ادبیات در دیوان شعرای کهنه قوده بر بود و خبر از دنیای او نداشت آقای دبیر میدانست که در لیفه شلوار فلان صوفی عهدبوغ چند تا شپش وجود داشته اما نمیدانست در دل یاره چه می‌گذشت و چطور زندگی می کرد. یاره به سهم خودش زحمت می کشید شاگردی می کرد. پدرش کارگر لاستیک بود. شبها خسته به خانه می آمد و بدون یک کلمه حرف می گرفت و می خوابید. با پدرش به دکان می رفت. های بزرگ لاستیک را می و جلو می آورد. قسمت های سافان را برای زیره ی کرمانشاهی می بارید. کف دستش تاول می زد. خون می‌آمد، پینه میبست و سفت میشد و او با همان گازن تیز پینه های کف دست خود را میبرید تا صاف شود. جاهای دیگر هم کار میکرد تا اینکه رفوزه شد و پدرش نگذاشت به مدرسه برود. زد و عاشق دختر صاحبخانه شد. نامه ای به دختر نوشت که ای بانوی عزیز من شما را که بسیار نجیب هستید دوست می‌دارم و امیدوارم روزی بتوانم با شما زندگی کنم و شما خوشبخت بشوید و همراه نامه هم یک و انیکاد با زنجیر برایش فرستاد نامه و هدیه به دست مادر دختر افتاد و یاره و خانوادهش را از آن خانه بیرون کردند به محله دیگری خانه کشی کردند باز هم عاشق دختر صاحب خانه شد اسم دختر بهجت بود و دوباره ای بانوی عزیز صورت شما مثل شمایل حضرت مریم است. چقدر خوب هستید و مثل هنرپیشه ها میخندید امیدوارم بتوانم شما را خوشبخت بکنم و یک انگشتر فیروزه هم که از میان خرت و مادرش دزدیده بود همراه نامه برای بهجت فرستاد برادر بانوی عزیز بو برد و به اندازه یک بادم جان زیر چشم یاره کبوت شد از یادآوری این خاطره خون به چهره یاره دوید از خودش خجالت کشید و قلبش فشرده شد و حس کرد که بهجت را به اندازه دنیا دوست دارد به یاد پیرهن صورتی رنگ زیبا و بینی قلمی و خنده‌های قشنگش افتاد اتوبوس ناله می‌کرد و می‌رفت و او در فکر بود به یاد مادرش افتاد به یاد خواهرش خواهر کوچولویش و به یاد دوستانش و هزاران یاد گذشته در او زنده شد غیافه پریدرنگ و پریدهرنگو چروکیدهٔ مادرش از جلو چشمش محو دست دستهای کوچولوی خواهرش که به سوی او دراز میشد و پول میخواست و هایی که میکرد تا او را به سینما ببرد همه به یادش آمده بود سگی از پیاده رو گذشت و پوزش را به درمانید. یاره به خود آمد و کاغذ و خودکار را برداشت و نامه را شروع کرد پدر و مادر عزیزم را سلام می‌رسانم و احوال پرسی می کنم. پس از سلام و احوالپرسی از شما امیدوارم به درگاه احدیت که همیشه اوقات خوش و خرم بوده باشید و زندگی شما در پایان مثل یک فیلم خوب باشد که کسی در آن کشته نمی شود مگر آدمهای بد و هرکس به هر چیزی که میخواهد می رسد. باری من نمی خواستم از شما جدا بشوم ولی روزگار نخواست که زیر سایه شما باشم. دلم خیلی تنگ است و هیچ از گلویم پایین نمی رود حتی آب. من در یک دکان چراغسازی کار می کنم و استاد خوبی دارم و درآمد حسابی دارم و همیشه به یاد شما هستم. وقتی به تهران رسیدم به یک استودیوی فیلمبرداری هم سر زدم و آنجا به من گفتند که تو برای هنرپیشگی خیلی خوب هستی. چند روزی به من درس دادند و من در چند فیلم هم بازی کردم. در یک فیلم هم موی سرم را رنگ کردند و موتلایی شدم و با بانو گوگوش هم همبازی شدم. من و بانو گوگوش از یک تپه پایین میدویدیم و او فرار می‌کرد تا اینکه در یک باغ به با او رسیدم و او را گرفتم و فیلمبردار زود زود از ما فیلم می‌گرفت و آفرین میگفت. یک روز هم از یک خیابان می‌گذشتم یک ایده فیلمبردار از مردم و خیابان فیلمبرداری می‌کردند. من ناگهان خود را به میان مردم انداختم و دستها را تکان دادم و فریادهایی زدم وقتی همه متوجه من شدند فریاد زدم بگیرید بگیرید آی دوست آی دوست خلاصه ای مادر عزیزم فیلم خوبی شد البته آنکه فیلمبرداری فیلم برداری می کرد، سرخ شده بود و فریادهایی می زد که ندانستم چه بود در یک فیلم هم با بیکیمان بردی بازی کردم و یک مشت به چانه او زدم. او هم مرا بلند کرد و روی سقف یک ماشین انداخت. البته شما ناراحت نباشید چون قبلا فکر جان ما را کردند و بلایی به سر ما نمی آید. اینجا هنرپیش به من سر میزنند و ما چراخهای خراب آنها را تعمیر می کنیم. همایون یک روز آمد و خیلی ما را خندانید. استادم خیلی خندید و از اینکه من این همه دوستان هنرمند دارم خوشحال شد و گفت که در فکر یک نقش هم برای او در یک فیلم حسابی باشیم. شبها کمی ناراحت هستم و جز نان چیزی نمی خورم. خیلی دلم کله پاچه می خواهد. امیدوارم در فیلم می بازی کنم که در سر میز کله پاچه می خورند و من هم شکمی از ازا در بیاورم. در یک فین بازی کردم و بازی من این بود که کلاه جاهلی به سر گذاشتم و یک تار به من دادند که دستم را مثل وقتی که کسی تار میزند روی آن حرکت بدهم و دهانم را مثل آوازخانها باز کنم یک سبیلی برایم گذاشتن که خیلی دیدنی بود دست آخر یک چلو کباب و یک شیشه دوغ به من دست مست دادند هر وقت بیکار می به آنجا می شاید یک نقشه دیگری به من بدهند و یواش یواش معروف بشوم و انسانهای ظالم را در فیلم کتک بزنم و شما به من افتخار بکنید البته چشمبندی هم یاد گرفتم که اگر فیلم نشد در چشم چشمبندی کنم حالا میتوانم یک چاگو را تا نیمه بخورم و شما نترسید چون راه دارد و من یاد گرفتم و دهانم را نمی برم. اینجا موش زیاد است و از سر و روی من بالا می رود خیلی ساکت است و من خوشم نمی آید استادم پولهایم را جمع می کند تا برای من یک لباس کار بخرد و بعد لباس و کفش هم بخرد خیلی به یاد کرمنشا هستم خیلی به یاد دریاچه تاقبستان هستم و خیلی درم حلوا و شل زرد می خواهد. در یک فیلم بازی کردم و ناگهان به زمین خوردم و مرا به بیمارستان بردند فیلمبردارها دست باچه شدن و با بانویی که در فیلم بازی می کرد و اسمش یادم نیست به بیمارستان آمد و به من سر زد. از گلویم خون می آمد و حالم بد شد. آن بانوی عزیز میخواست مرا ببوسد و من سرم را کنار کشیدم همینطور خون از دهانم میامد تا اینکه از حال رفتم. یک سید نورانی با لباس بلند و کتابی که در دست داشت روی سر من آمد و من دامن او را گرفتم و التماس کردم که مرا ببخشد و به نزد شما برگرداند چون از این زندگی سیر شدم و شب تا صبح تنم را میخوارانم. سید نورانی با کتاب کلافتش سه بار محکم روی کلم کوبید که گیج شدم و باز گریه و التماس کردم آریه ای مادر رنج کشیده من و ای پدر بدبخت پسر شما مرد مرا به گورستان بردند و شب که شد آتش از قبرم زبانه کشید. هنرپیشه گریه میکردند و دسته گل زیادی روی سینه من گذاشتند. الان من مردم و این نامه را برای شما میفرستم. به حال این پسر بدبختتان گریه کنید و بدانید که او ممکن بود هنرپیشه خوبی بشود اما خدا نخواست. به آن برادر بیبر یعنی داشیی بگویید که نابود بشوی یه برادر. تو برادر نبودی تو مشتباز بودی که فقط می به چانه من مشت بزنی اگر مرد هستی برو به چانه محمد علی کلی مشت بزن تا نتیجهش را ببینی ای مادر بیچاره دیگر از دست کارهای من توی سر خودت نزن راحت شدی ای پدری که کمرت شکست دیگر نمیخواهد به دادگاه بروی و جواب کارهای مرا بدهی من دیگر در این دنیا نیستم رنچایت به باد رفت و پسر جوان و مرد من بد کارهایی میکردم و یک فاطمه خواهر کچولویم را دستیدم ونگشتر فیروزه ترائی مادری که هیچ دلخوشی در زندگی نداشتی دستیدم من هیچ پایدهی برای شما نداشتم حتی یک دانه نان سنگک هم برای شما به خانه نیاوردم ولی چه کنم که خودم خرجم زیاد بود؟ و از این سینما با آن سینما میدویدم چون زود زود فیلم عوض میکردند. دیروز چکش روی انگشتم خورد و ناخونم سیاه شده است اینها همه جزای من است بگذار به سرم بیاید به برادر بیرحم بهجت بگویید که این نامرد به خدمتت میرسم و جواب مشت تو را میدهم. مادر جان. گریه نکن و موهای خودت را نکن و به صورت رنگ پریده خود ناخن نکش زیرا فایده ندارد آخرین حرفی که وقت مردن از دهانم بیرون آمد این بود آه ای بهجت بانوی عزیز دیگر ارزی ندارم فقط هر هرچه زودتر مرا نجات بدهید قربان شما فرزند بیچاره و بدبخت شما یاره آدرس من تهران سراه ترشت چراغ‌سازی درخشان